بیا با ما مورزین که این داری که حق صحبت دیرین داری نصیحت گوش کن که این در بسی به از انگوهر که درگنجین داری بلیکن که نمایی روخ برندان تو که از خرشید و مه آین داری بد رندان مگو ای شیخ و حشدار که با حکم خدایی کین داری نمیترسید آه آتشینم تو دامی خرقه پشمینه داری به فریاد خمار مفلسان رس خدا را گرمه دوشینه‌ای داری ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری